بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على و امارات های مقام میشن به دو قسمش یا به یک قسمش این آقا لما متحقیل مثل مرونهای نیم از موازی یا دیگران متعرض بس حقیقت و اصول تنظیلی به اشاره نیشون و غیر تنظیل و نحله حکومت امارات بر اصول یا بعد از اصول بر بعضیه متعرض شده حالا بخصی اینها ها با درد بیاد اما چون آن در اینجا شده، شدن با هم به درد مختصر به تفصیلش انشالا برد قاعد آمد و به لحاظه که این مسئله خودش خوبی که از مسئله بسیار مهمه در حصول اصافه و خصوصا در کلمات قدمای حصول شهر سنت چه قدمای خودشیه حتی قدمای شیه این مسئله اینطور تنظیح نشده اینطور که در کلمات متأخرین از اصولین آمده و اصولان تر به اینه هست که محفظ و قیل چطور خواهد شد تندیلی یا به تنظیل برده از زیادن به محفظ و تنظیلی که در نظر ما حالا تفاصیلش بعده شد ما برای موضوع محفظ در این حال نحوه تقدمه را بر اصول یا بعدی از اصول بر اصول دیگه روشن بشه یه مقدار صحبت کردیم و امروز برای تکمیل برسوندیه ضرورتی حتی باید برست بشه با یکی دو مثال مطلب و انشاءالله دنبال میکنیم از عرض ما به که اگر مفاد عرض مجرد جریه عملی باشه این اصل دیگه محرزه اما اگر به نحر این رویت ولو تنزیدن ولو اعتبار، از خارج باشه این میشه اصل محرز این اجمالشون خب آلام بحثه خیلی مفصلی هم دارن که مثلا چطور بعدی از اصول برزی بعد دیگه مقدم خواستن مثلا اگر در حال تجریه شکل در رو بکنه استثها به عدم رکوع هم که جاری میشه به لحاظ حال قیام رکوع نکرد بوده استثها به عدم رکوع وقت این قاعده تجاوز میگه بلا قبر کرد رکوع رو انجام دادیم اینجا تصوری کنم بین قاعده تجاوز استثها تا آرز هست استثها میگه رکوع نکردی، قاعده فرا تجاوز میگه رکوع کرد کده یکی رو مقدم بکنیم و بسید تقریم چیه این رو از کلم مرگون شیخ در آخر در و اصول در عنوان تا آرس اصول وردن قبل از بحث تا در آخر استثاب و در اینجا هم اعلام مثل مرگون آینی آزیا اشارات که در این بحث دارن که وجه فقط تقویل مثلا قائد تجاوز و مثل استثاب چیه فرض کردن که ازده قالب برودن ازده قالب حکومت مثل ازده ادهه هم خواهد به مسئله تخصیص بایدان تخصیص کنم ما برای اینکه این مطلب روشن بشه حالا که دیگه وارد این بحث در حد توضیح کافیش این شد در محله خودش من یکی دو مثال ذکر میکنم و کیفیت جریان اصل رو تطریق می تا مطلب روشن بشه ببینیم فرض کلام در اینجا شخصی در حال سجوده شک در رکوع میکنه در اینجا به طور طبیعی سه حالت فرض میشه یعنی سه نقطه وجود داره یکی حال سجود خودش خب در حال سجود داره شکل میکنه که ابیه متأخر خودش یکی در حال رکوع که آیا انجام داد یا ندار به طبعز این شده. داره حالت هم حال قیام چون قبل از اینکه به سجده بیاد در قیام بود قرائت انجام این ایسا حالت موسیل نبیدیه این در شعه نیست هیچ بهت نداره حال سجده داره حال رکوع داره و حال قیام حال قیام ایشان متعقید الان قطعا منسرم شده گذاشته حال رکوع هم مشکوکه حال سجده هم متعقید این سه تا حالت این داره اون اصل عملی که میخواد بیاد تعبد شرعی که وارد بیاد و حتی به نظر ما فهم و مقلعایی که اینشار رو بعد عرض ممکنه نسبت به همیچ حالت نگاه بکنه اگر خوب دقت بکنید مثلا ممکن است با حال سجده نگاه بکنیم این در حال سجده شک میکنم میگه امزدی سلاسی بروس نماسک میگو امزدی سلاسی یعنی شیگه به حال رکوع هم نگاه نکرده، حال قیام هم نگاه نکرد قرائت نگاه نمیشه فی نماز خونده قرائت باشه دو این که ممکن است حال رکوع نگاه بکنه بیش شما شک به در رکوع بلاغذر کردید ببینید اون حال رو رو نگاه کنه سه ممکن است حال قیام نگاه بکنه یا شک در رکوع داره یعنی چه بیستاده نبود دیگه مسئول قرائت نبود ببینید می از اون حال قیام نگاه دستش این اصطلاح هم بشینگر نهره در اصول نهره اعتبار در اصول این جویه اون حال اعتبار ده خیلی فکری من واضح و دیگه رو چند این از خاشون خیلی جا قلق داره این قلق رو خیلی راحت براتون حل دیم یک حال سجود نگاه میکنه. چی میگه میگه و نماز دیدان کار نداره به رکوع و قیام اصلا کار نداره دو حال رکوع نگاه میکنه میگه بلا خطر است. سه حال قبل از حکو به نگاه میکنه. میگه چه قبل از داخل روشن. حالا بعد قبل از اینا میگم یه مثال دیگه میزنم. شما به امام میگین من رفتم بازار گوش خریدم خونه اومدم حالا نمیذونم چی مثلا جای پس گذاش. یه دفعه امام همین حالت شما رو نگاه میکنه که الان گوشه ورزین تو خونه. یه دفعه حالت که گوش رو از پس مسلمان خریدین نگاه میکنن یه دفعه گوش رو در حال تکیه که وقتی سرباریدن تکیه شد یا نشد خب چه تا حالته؟ خب تنبال به نظر من خیلی واضح چه تا حالته؟ یه حالت الان گوش هست و خونه باشه دو گوش رو از مسلمان خریدین سه اون تذکیه وقتی سر ایوان بریدن تذکیه انجام شده یا این این سهالت این چیز راحت سنز میشه تو محام اعتبار بختمو اینه به لحاظ هر سهالت میتونه اعتبار بکنه مثلا در حال تجهه به لحاظ تجهه اعتبار کنه چی میگه میگه امروزی سلاسته برو اما تام. این رو ما میگیم اگر حال سجده یعنی حال فعلی شما رو بدون این که چیزی دیگری از حالات سابق اصل غیر محرز این حالات اصل غیر محرز همین که میگه امروزی سلاسه اگه اصل غیر محرزه چرا؟ چون نه به یقین اولتونی که قیام بود نگاه میکنه به حال روکو کار ندار به حالت قبلی پس احراز نجن نظری نجن و شما از الان به دردون و دیفه شما از الان به بعد و شما از الان به بعد امرو می فقط اما تو خوب این طلاات تحت غیرمز خیلی تو هم روشن شده بود این بیشه اصل مورد. مورد اما اگر گفت گفتبرا قدر کرد این حالات ل نگاه کرده خب چون نگاه کردیم میشه معقع چون نگاه کرد میشه احاف از اون برد وقت میکرد به تحقیق رو بود این اصطورتون قاعده تجاوز پس حالا که گفت بلا قبرتن اگر تحدیر کرد بلا قبرتن یعنی یک اصل محفظی براتون قرار داده به اون احراز رو بوده که تصویرشی داره به معلومه بوده اما اگر اینجور رو شما بود ایلا من در سجده شک کردم امام میفهمد که تو قیام تو مسلم قیام انجام داری بقیه اینجام داری رفت و قیام حالت و قیام میشه استثنا اینم میشه محفظ و محفظ میشه چرا احران؟ چون آمده حالت قبل از روکی دیده اون حدم رکوع اون رو مخواد ادامه بوده اگر گفت رکوع کردی اینم میشه محفظ این حالت وقت فرسیگه اگر گفت این روزی میشه میشه دیروگوره خیلی تثیر روشن ساده و بسیر و واضح هست این روشند ببنم اولی یعنی که رو از بزید اولی که از بزید یعنی که که هم تا رویی یعنی به حضر برکون میگیرون تا اونه گره میشه باقیر خب میدونم قیام رو چرا میگیره قیام رو میگیره با خاطر ازم روکو خب همون اگر آمد اون دست گذاشت آمد رو قیام شما دست گذاشت یعنی روکو انجام نداری اونجا محرزه اونم اصل ازم اونجا محرزه میگه روکو انجام بذاری یعنی چه کرد یه قیام نگاه نکرد خود دقت نه دیگه آمد در شما شاید تحبایدی میدونم احراد ایجاست سه جور تصرف میشه یکی حالت فعلی یکی اون حالت مشکوک یکی حالت قبلت مشکوک چه سه تا دیگه خب به نظرم خیلی مثال واضحه یعنی خیلی گویات مثال اگر حالت فعلی تو رو نگاه کرد میشه از غیر مبرز. چرا؟ چون به کوره شما نظر شما به قیام شما نمازت هم کن نمازت کن ببینی؟ این میشه به یه خیلی تفسیر از و غیر برای خیلی روشن جده باشه باید, باید. میشه از غیر میشه میشه از محرز. غیر محرز. یعنی به اصطلاح اجازه استمرار در نماز از این روزه تجاوز از محل قائل تجاوز اما قائل تجاوز نه با غیره مقدر تا میگه امزفی به هیچی نگاه نکره بله درد بیا من ساله اشاره کردم معتقلن همین که گفت امزفی سلاته یعنی نگاه کرده به خوب این صرف این کسانیز که اصل مورد و غیره مقدر توی یه جور گرفتن میگه تا گ به ملازم این رو خو انجام دادی تو میگه این رفی ثلاثه اونتا توضیح ایسیم که در امور اعتباری لوازمش اصل نمی کنی جوابش گذشت. وقتی گفت این رفی ثلاثه به لوازنش تو رو انجام دادی اصل نمی اون اعتبار خاص رو میخواد در مثال راجع به تدکیه میگه آمن گوش از بازار خریدم حالا نشاب اما میگه بخور کل الله ببینی گوش بخور این گوشته بخور اصلا لیر محره نیم خواهد بگه امام حالا چذکیه شده توشنی گاهی امام میگه تو از مسلمان نخریدید آمد اون حالت خریدن از مسلمان نگاه کرده این میشه قاعده سوق مسلمان سه قاعده تجاویدید از این شو محره میگه تو این از مسلمان نخرید. میگه در بازار مسلمان ها نخرید توزه بکنی؟ بکنید یه دفعه امام چی میگه بیو می کردن اون میگه تو کشتارگاه بودی ببین این دوستا درست تک جیوان اگر راستو خوشدارگاه نه اسات علم است چی استثاره اگر گفت از دست مسلمان خریدیه یعنی قاضی سوقمسه اگر حال فعلی شما داشت میشه باشی اساسله بو این اساسله هستیم اثر غیر این معنی اساسله این پس خوب دلیل مثالی این دو, دو مثال من دقت بکنید این خیلی مهمی مهمیه که الان مسئله مطلب بعده که کازنت نایازیا بزرگان به نظر ما حل اساسی قضیه از این راهه خب یه همون خلاصی میشه دروازه ظاهر خب اون ظاهر تو میگن ناظر به لسانه الله به آقای خویی هم که محرزی دیمونست بردیمون سه ساتر خیلی اونایی چی میدونن چون جنبه شرح و حکومت برسوارد روشند را مثلا فکر میکنم خیلی با این مثالی که من زدم با این بکنم مثال خیلی روشند شد یه دفعه میگه آقا حلال بخور این میشه ساتر خیلی یه دفعه میگه از درس مسلمان خود آمد لحاظ این که بگیر در اصول همیشه لحاظ هست این مهمه شد خداگیر خوبه ما میدونم فرقونش دارن خب میدونم قبول دارم اگر امام اگر تعبیر اینجور شد من دارم یعنی میخوام این نکته رو عرض بکنم که در اصول عملیه کنه اعتبار و مقام نیست مقام اثباتش مثل همه من میخوام بگم حتما در مقام ثبوت شما لحاظ میکنید اون تعابیرتون از تعابیر هم مقام ثبوتی کهش بگیرید مقام ثبوتش همونه چه جور میشه تعبیر کرد خب دقیق بکنیم سه طبق یک میگه بخور این گوشت بخور این طبق گوشت بخور سه جور زن میشه خیلی مورد دو میگه بخور میگه میگه از دست مسلمان نگرفتی ببین؟ خب نگاه کرد اون حالتی که شما گوشت رو از مسلمان گرفتی این تو بازار اسلامی نخرید این دست مسلمان نگرفتی این میشه بایده سوخ مصمی این میشه ماخت چون نگاه بگونداره میکنه سه میگه میگرد در کشتارگاه بگذی بودی که این حیوان نروز کنیم در کشتارگاه تا در کشتارگاه بودی یعنی مخواد استثاب عدم سسیه بکنه تا حالت قبلت سوخ رو نگاه کرد یعنی میخواد استثاب عدم سسیه رو بکنه این سه مثال, مثال روشنش بحث ما در اصول اینه اصلا در وحث اصول وحث خوب دقیقه فرمایید یعنی سه جور میشه لحاظ کرد البته این لحاظ های افرادی بود و الان ما در مجموعه رواید بیشت نیست ممکن ممکنه بگه امغفی سلاتک سن مغز رکوع ببینید این حالا امغفی سلاتک که از غیر مغزه ایت قرار هم با استثاب عدم رکوعه که وقتی قضا بگو انجام ما، من کی بگو قضا بکن انجام ما. کی بگو قضا بکو؟ این مراد ما از عت که محض و غیر محضه. مثلا آ شما ایستادی، حمد و الله را خوندی، چند درساتون تمض شد. نمی‌فهمین رکوع انجام بدین نه، اما ایستادی، خوب دقت بکنید. در حال ایستادن شک می‌کنید، رکوع انجام بدید. آقا میگم رکوع انجام بدید. چرا؟ چون دیگه اینجا اصطحاب عدم رو میشه. بلا قدرکت جاش نیست. تسگاهی میاد. اون حالت صادره نگاه میکنه. مثلا شما سر از سجده بردستید. شک کردید. سجده اول بود یا دوم بود. مادام بلند نشدید. میگن یه سجده دیگه انجام بودید. یعنی چه سجده دیگه؟ یعنی اصطحاب عدم شده. شما اون حالت قبل نگاه کردید. اما اگر بلند شدین یا در حال قیام رو متن در حال رکوب اگر بلند شدین یا در حال رکوب رفید شک کردین یک تجزر انجام یا دوتا میگن بعد نگاه نکن بلا قد تجزر انجام کردین پس بنابراین این مثال واضح شد که در اصول لحاظ میکنه از, از تردم اون لحاظ ترکیبی یک شرحی داره به این آسانی اینها ها نیست چون در لحاظ ترکیبی وقتی گفت امز کو و کو رو غذا بکن یع ح عدم رو کو شده پس اون او امضفی ساطه چیه؟ چطور جمع میکن بین غذا رو و امض پیش سه او یه چند میز جاش اینجا سوفره بعد م حالا ترکی می باشه بعد مکنلا حالات ارادیو ما این بحثی که میکنیم اینه شاره مقنن، آن گذار و بلکی به نظر ما عرضز می کنیمیمسیره و اوقللا هم بر همجاره آقایان غالبا در کلماتشون بین سیره و با تعمد فرق می‌ذارن. بذارمو فرقی میکنه سیره همینه. سیره و عقاید برهه مسائل جاری. خلاصش اینه که در این حالا میتونیم ما حالات رو نگاه بکنیم. این منافات نداره. فرض قاعده تجاوز من این روات رو براتون گفتم ناراحت نشید. قاعده تجاوز معروف بین فقها اینه که در شک که در وجود جاری نمیشه. مثلا شما الان مسحه پای راسته کردین شک کردین دست راست شستین یا نه مسحه پای راست، تجاوز کنید از معلم محل بنای خواه اینه که برگردیم دوار دست راسته بشونیم بعد دست چپ بشونیم بعد مسحه سر بعد مسحه پای راست تکراری ببینید این روایتی که از در صفحه در این جلده اول چاپ برمارن بانی که به اصطلاح اینجا دسترس من بود در صفحه سی و سه روات صحیح ایز از بغاره سالا یه شهر که هم داره بله هستن از هیجا شکر بحثش نید ان عبی جعفر علیه السلام قال اضا کن تقایدن علا وضوعه اگر تو نشستی مثلا مست پاید چپ کرد پای راست کرد. فلم تدره اقسلت زراعی که املا ببینیم سعد علیه ما تا گفت عهد علیه همانی اصحاب داره شد قاید تجابه داره شد اون قاید هم نگفت همزه فی وزو اکسه تا احتمال بود من پای راستم می شستم من از که یعنی شک می کنم هنو تو وزو ازم دست راست می شستم یا نه یعنی. همون سطح احتمال در نظر بگیری یک بگه همزه فی وزو اک دو بگه بلا قطر, قطر سه دیگه نه برگرد اعه تا بس اعه میفهمیم استحاب که در عدم رو من ارز کردم این خیلی نقطه که خیلی این است که خیلی کار گوش در کلمات علامه هست فایده است که خیلی جدیده این آثار عجیب و در حال سجده اگر شکل در پوک کردین سه حالت سه حالت رو میکنم شاره و جایل اعتبار بکنی یک حالت سجده شما مقام اثبات چی میگه؟ یه امزتی فلاسه دو حالت رکوع که مشکوکه مقام اثبات چی میگه؟ بلا قدرکت سه حالت قیام که قبل از رکوعه ملارزه بکنه چی نگه؟ یه قوم فرکر اگه با قوم فرکر یعنی حالت قیام ملارزه کرده اون وقت اگر حالت قیام ملارزه کرد استخاب داره میشه که اصل موقع اگر حالت روپورو که مشروطه قاضی ایش هم کرد اینجا تجاوز سجاوزه اینم اصل محرد است اگر در حالت سجده بشه نگاه کرد برو اعلان بذارد سجده این میشه اصل غیر محرد این فرقه به این گوزا سف حالت تثریر میشه مثلا در حالت قاضی تجاوز اون میگه بلا قبرکه است این حالت روست تثریره خیلی راحت چون گفت بلا قبر کرد یعنی من دارم نه نگی میبینم من جرم کردم که تو که انجام دادی این میشه قاعده تجاوز حالا این روز بیدید الا کنید که قاعدن علا وضوعش. یعنی مثلا محض پایرست انجام دادید شک کردید در شدسین یا نه خود قبر کنید فلن تدره اقسل تدره ای که املا و عهد علیه ما ها. ا علیه علی <تجاوش> نیست. اتفاقی که در اصل اوضو قانون تجاوز جاری نمیشه. در اصل حالا جاری میشه، در اصل اوضو نمیشه. این نمره کلام درکی رشته مثلاً هر جوی نه. استاد آقای جاری میشه. ماستادیش او مربای جاری میشه. به هم هم با جاری نمیشه. ما هم بناهایی جاری میشه. تفصیل کرده خودش. و علا جمعی ما شککت فیه انکلم تقسل و اوتم سخو مما مم سمالا علا که این مما مم سمالا یه نکته لطیفی داره که شاید نوپهش این باشه که چون اینها در برآن زید شدن فصل وجود حجوع کن و ایدیه کن اینها مرافر و هم کن چون یه قاعده دیگه هم هست که هرچی که در فرزه الله فی کتابه اینها باید یقینی باشه شد رکوب به عنوان در قرآن نیامده فرقه امر این آمده بعد یک دقیقه آمده جمع کرده این که نماز اول تکیر است و بعد جسول الله و بعد همدو و الله و بعد رکوب. این به این ترتیب در قرآن نیامده دقت کردیم پس این نکتهش احتمالا این باشه خوب دقت بکنید اما میفرماید چون این ها ما الله و سماه الله کتابه من ارز کردم قائده به نام ق به اصطلاح فریضه و سنت داریم مطلب اینا فریضه و سنت این مطلب در روایت امام باقر روش زیاد تاکید شده. شده این جای شر در روایت امام صادق اینقدر تاکید نشده این اگر ثابت بشه خیلی ابواب خاص رو درگیر باز میکنه و اگه کاشی که از ابواب بحث اصول ما همین قاعده فریده و سنت بود آقای و ما خوب. بله هر چند این قاعده علا تغییر تمامیاتش ان انشاءالله الله قابل تخصیص هم هست مو اون, اون قاعده اینه که ما یک لبنه الله داریم یک دون سنن بعد این تا فروغی هست یکی از اون شیره این توی روایت به اسلام معروفی از امام صادق هم عمل امام باقر هم برداشتن کی میگه خدا متعال در از در نماز دو شکر قرار داره اون درکت بعدی رسول الله شما در اون درکت بعدی شک قوپه این شایل من نماز درست اما در فرازه الله اگه شک قوپه نماز باطله اینجا هم دارم مما سملا ما دمت فی حال الوزو گفته قرار دارم ببینید قمت من الوزو و سرق من و قد سرق فی حال اخرام فسلات او غیرها فشکر سفی بعض ما سمالله من ما اوجب الله جبالله و کفی وضوعه لا شیعه علی کفی چیزی در اونجا نیست البته این لا شیعه کفی با قرینه نواز اینها احتمالا مثلا پایده به اصل غیر محارض باشه از اون وقت چون داره سرقته استعلا با قاعده طراق باشه قاعده طراق اصل مفروضه هر چه که مشهور بین علما قاعده طراق در جایی جاری میشه که بعد از تمام عمل باشه شکل به میگه. و شک در صحت باشه هم قاعده طراق اونجا میاد و ایناات به طور مطلق قاعده طراق جاری میشه قاعده طراق جاری میشه تو حضور هم جاری میشه تو غیر حضور هم جاری میشه اون قاعده ای که معنیش اشاره تجاوزه قاعده تجاوز در نماست قطعاً جاری میشه چون رواید داره در وضوع هم قطعاً جاری میشه چون رواید داره کلام خونده خیلی مشروع این برای کلام در غیر این وضوعه محلوم استاد استاد که جاری میشه از اون قاعده تجاوز و غلایه نمیدونه تا از از مثل استاد همه که جاری نمیشه البته بخص کمروی دیگه هم داره که آیا قاعده فرا و تجاوز یه قاعده و الان تقدیر این که یک قاعده باشن هر دو قاعده فراغ یا هر دو قاعده تجاوزه. هم دو تا قاعده هم که ها کردن یک قاعده در شک در وجود عمله و بعد تجاوز و در اصنا عمل مثل شکه در وجود رو کو یک قاعده در شک در صحت عمل بعد تجاوز هم به نظر میشونه روشن شد این رو اسطلاح قاعده فراغ پس امام در اینجا داره که اضافه و فرقه تمنه. این فرقه تمنه که از اما امام ها بخواد بگه وضوط تمام شد. چون نظر داره به فرقه تنه قاعده فرام میشه و نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی این میشه که از این قاعده ترد و اضافه بر او اصل محرد. یعنی این دیگه درسته. همیجه فراخت دا که درسته. دیگه استثاب نمی کنه عدمش رو این راجع به این مطلب پس تا اینجا فکر می کنم الله تعالی تا حدی فرق اینها روشن شد از اینجا اون نکته دوم این اینجا به نظر ما مشکل نداره که همین مطلب رو همشان که در تعبود شرعی فرض میکنیم در اغلایش هم فرض میکنیم. مشکل نداره یعنی این مطلب این مطلب تعبدی سه که قبول بکنن مثل این نسانیشه عرض کردن گوش خریده نمیدونه تسکیه شده آدم سه تا احتمال داره یک امام به سرمد بخور گوشت رو یا پدر بچهش بگه بخور این حال فعلی نگاه دو حال اونی که از مسلمان خریده بود نگاه کرد سه حال این زرگ نگاه کرد هر کدام از این سامالات دیده بشه الان این حالت افرادی حالت ترکیبی هم داره هر کدام از این سامالات دیده بشه اون و یک اثر خاصی در اصول داره این یه نکته نقطه... نکته دیگری که در اینجا وجود داره نسبت بین اصول بعضا بعضا روشن شد مثلا یه درزا هم گرفتن، یه یه درزایان فرسوح حکومت گرفتن، میگن شاره احد و دلیلی و یه دلیل دیگه. یه از از به نفر تخصیص گرفتن که اشاره کرد. اما انصاف قضیه با این تقریبی که ما اعرض کردیم چون دوام اصول به لحاظه و اگر لحاظ نباشه هیچی نیست مثل شبیه معانی انتظایی ولی اینجا انتظایی نیست اعتباریه برای شما لحاظ این سخت رو به من میگیرید میشه فوقیه اگر به من لحاظ نکرده می کنید فوقیت چیز بینید صرف جای خودش محفوظه منم جای خودم محفوظه هیچی نشده همین صرف رو به لحاظ طبقه بالا میشه تحبیه هیچی اضافه روش یک چیزی اضافه شده به لحاظ تحبیه هیچیز بشه اضافه شده به لحاظ فوقیت هیچ خرقی نکرده دقیقه نفرموید اصول هم از این خدیل هست شبیه این لحاظ ه به ذهن ما اصلا حکومت یا تخصیص معنا نداره جای تصور و قوه معنا تخصیص من. چون در اونها لحاظ دو دری با همه ببینید یه دفعه آمده حال شما در حال سجده نگاه کرده اصلا نه نه که در حالات دیگه اثبات نشده تالهات بکنه هر به اون موج دریا موج همون حرکت آب چیزی نیست این میگه موج میره همون که آبرفت میشه موج نرد میشه آب. آب با موج فرقی ندازه. اصولاً از این قبیله به قبله. همین که لحاظ کرد. اگر لحاظ کرد که مثلا این گوشت رو بخورد دیگه در اینجا او چیز اصلاً حالت قبل و قبلشی نگاه نکرده. لذاب چه اگر آمد گفت که بلا قدر کرد یعنی قبله هم دیگه استطاق جانی موشد. دیگه قفیستی جده بند ندازه. چون اصلا اون لحاظ نکرده اگه لحاظ نکرده قطعا این نمیشه اگر گفت شما قیام بودی فعیل علیه اتا مثلا تفیق قلب روکو اگر این بود مناشه استطاب نگاه کرده چیز دیگه نگاه نکرده لذا تبقیه این تصابه یک چیزی شبیه تخصص آلا اسمش هر چیزی نکرده بگذاری بله گفت که به هر حال چون تعبدش خورده پس لعقل روزه نه تعبودی که اینجا خورده مقردن وجودش هستند یعنی چیان امر اعتباری به همون لحاظ لحاظ مواجه وجود ندارستان وجود این لحاظه لذا احتمال تخصص و تقدم به نقر تخصص و نظر ما فوق العاده قمیه این راجع به این اصول مهرز و غیر مهرز یه نکته آخری که در خلال بحثای گذاشتم بهش اشاره کردم مسئله احتیاف خب آنان عوامر احتیار گرفتن سه خوک دین و فهدت دینه فحتد فحتد این هم یک توضیح مختصری ای تفصیلش اینشالله توی بحث احتیاط به ازمه لازار در خب ما معتقدیم احتیاط از سه جهت قابل بحث یعنی سه جور احتیاط مدحقی قد داریم گاگینا با هم دیگه این لفظ خرک میشه با هم دیگه احتیاط یک جور نیست سه تا نقطه داره نقطه خاص هر کدون نقطه خاص خودشو داره و سه حقیقت یعنی سه واقعیت جلازانه است یکی نیست و هر کدوم یک کسی رو مناسبه خود رو یک احتیاز به لحاظ حکم عقل نظری یعنی به لحاظ ادراک عقل نظری این به لحاظ ادراک عقل نظری حقیقت احتیاز این است که انسان جمعی احتمالات را انجام بده مثلا چون این مسئله خود قول هست که یک بار انسان سبحان الله بگه یا قول هست سه بار بگه یا قول هست سه بار بگه که استغفر الله بگه یه قول هست سه بار بگه استغفر یه به این به حکم عقل ادراک عقل نظری اگر تمامی احتمالات انجام داده واقع انجام بده چند شغل هست یک، دو، 3 4 این مثل یک جدول ریوزی. یک به اضافه دو به اضافه سر به اضافه چار اضافه خیلی مصابیم با ماهه ولی واقعی که از نکر این رو اصطلاحاً ما اسم شروعشیم احتیاط به مناس ادراک نظری به مناس حکم عقل نظری یه نوع احتیاطه که انسان ادراک میکنه جمعی محتویلات رو انجام بده دوم احتیاط به مناس حکم عقل عملی حالا یا حکم عقل عملی رو ظلم بگیریم، احسان بگیریم یا حکم عقل عملی رو لزوم استکمال بگیریم این احتیاط بفادش اینه چون در فسط انسانی کمال هست انسان باید سعی کنه هرچی بیشتر اون کمال مفروب خودشی برسه خب دقت کنین اون کار حسن رو بهتر انجام بده توی این بحث بیگه بحث احتمالات مفرح نیست تو این بحث بحث کمال انسانی مطرحه رشد انسانی مطرحه نو انسانی، تعالی انسانی مطرحه تکامل اصلا بحثش را به این میگه بی نه من تمام احتمالات داره انجام میده میگه نه بابا بخوای تمام احتمالات انجام بده بلکه 90 درصد انجام بده زندگی رو به هر دوری نظام بیاره زندگی اصلا دیوانه بخونه داره خیلی اشیا بخونه بعد تو بحث و جنون پیدا بکنه این چیزیه احتياقی حتا نمیذونه ذره اون عقل نظری بود مگفت جمعی احتمالات این عقل عملیه این دو تا با همزیه خرد شده این که ما خیال بکنیم اتیان جمعی محتملات که این عقل نظری حسن باشه به لحاظ عقل عملی این واقعیت نداره از که دیدین مطلب رو دو تا اجایب روزگاره نامهی داره محلوم آقا ملالی نوری حمدانی نوری اصحانی که کرد ماله اصحانی نوری محلوم نامه بسیار مفصلیه به معوم های محق قوممی سالقانیم پاضر قوممی بر در توی جاماش تا چاپ شده خیلی عجیبه با این کی رئیس باک زمان خودش که معم ماق بلند مییم و خیلی خب برایشون در اون مقام ها یک نامه بسیار مفصل و خیلی الاق بود پیش شااد می تق به تموزوعه با این هوایی که میش شده یک سه ال برای محقق قومی نوشته بر رئیس عاصوری از و میگه من مثلا بعد از عبادت شک کردم حالا اختیار انجام دادم ابو مولوی علی میگه انجام مرحوم محقق قومی می داره که این اختیار حسن نیست اختیار ذاتیه مستقله البته ایشون یک مقدمه نذیه بیشتر خیلی در مرحوم مدح مرو ابو مولوی علی خیلی دو بار و جواب عجیبیه اتفاقا خیلی عجیبه براه بله نه حکیم که حکیم که اصولی و برای یک خیلی خدیعشی میگه یه اون تصرف کرد که این ترفش و تقریبا یک نواخت یعنی یه کفی این در مطبونه وش در و اعجب اینه, اینه که اون حکیمه حال بکنه و تقریبا یه اعیاد داده بوده احتمالا کسی چون تو زمان ما تقریبا امور به عکسی می‌طلد اون که حکیمه با خد میکنه می‌کنه این فقیه و اصولی می ناوردن احتیاض رجا ندارم که احتیاضی که زندگی رو مختلف بکنی امور تبع بزنی این نشون نداره بعد عباراتم بردازم مفهوم موریات لازم از مفهوم موازی ساقطیاز در نمیاد لا خود یکی شد پدر پدرم است دیگه هر در حال این رساله سوالا و جوابا انفاقا بسیار رساله خوبی است و اصولا در بین اصحاب ما تا قبل از این او اخیر یکی اخی مخصوصا برداشته اصلا بنای اصحاب ما این بود که انسان انسان یا باید اشتهادرا عمل بکنه یا تقلیدا بکنه نمیکنه شیخا تو رساله جدا راست خود شیخ برگشت برعکس یواشواش عوض شد و الا در کلمات خودما ادعای اجماع بود در اول اجماع الا بطلان صاره که طریق الاشتهاد و تقلید این مرادشون اینه هر انسانی یا ترغیب بکنه براد بیست و رسی سوال بکنه یا مشهد خودش نگاه بکنه مثلا اینکه اگر سر کرد صلح کرد همون زن برگرده که نماز کسیوس تمام نمیتونه احیایش بکنه. بکنه هم بعد صبرم تمام این باد ترغیب بکنه اگر مشهد خودش برگرده مراجعه کنه اصلا عبادت احیایی رو باطل میکنه سر عبادت ثاره که تریلیش شده ادعا ادعا برشه زوده خود ممنونه این هم اشترال ما هم اشترال ما یک به لازی اشترال میکنیم این که در اول رسال های عملی نوشته روشه مکلد یا مقلد باشه یا مشهد یا محتاج محتاج رو ما قبول نداره ما قطع ما. یا اشتهادن یا تریدن. یعنی اگر تمکل داره حتی از معرفت تفسیری یا اشتهادن یا تریدن. دیگه لازم به معرفت اجمالی و امتثال اجمالی اکتفا بکنه البته مثلا انتقال حیات و نظام عناوینات و هر چیز با طبعا نفس اخرى لكن الشابيه ذلك ده قال مثلا همین مثال معروف یک کیتین پینوتا پنج تا آبا داره یا پنج تا لباس داره بذارید یکیش پاک یکیش نجس چهار تاش به اصطلاح پاک یا مثلا دو تا نجس سه تاش پاک آن گفتن میتونه شرابو چند تا نگاه کنه دریا صدوم پاک صدوم پاک نه عضو کنه میتونه که همون تاریکی تو پنج تا بکنه احتیاضا معنی نداره با اینکه تمکن داره از انتصال تفصیلی اصطلاحا همش عین انتصال تفصیلی انتصال تفصیلی یا اجتهادی یا تقلیدی این اصطلاح انتصال تفصیلی با اینکه تمکن داره از انتصال تفصیلی با انتصال اجمالی انجام می‌ده که اسمش احتیازه انتصال اجمالی است و به نظر ما هم اونجا شوحه داره الان تکوا اون در جواز این مطلعه. اون اونم به نظر ما توزه خب شما رو شرط لباس که این سوال نماز پنج تو دو تا جا تو سه تا این هیچ ذیعه عقلی و تعبیری مطلب نیست بر اساسش میشه ادعا کرد که با دیگه داره پس بنابراین دقیق اینی که آن خیال می‌کنن اطمینان جمعی محتملات این احتیاطه این نیست افتیان جمعه محتملات احتیاط به ادراک نظری اما این حس نداره خیال نکنیم ادراک جمعه محتملات این حس رو گاره. چه حس داره؟ حس داره این کار کجاست که انسان جمعه محتملات انجام بذاره و در این عبارتی چند بار احتیاط احتیاط که احتیاطه به نظر من مراد جدی باید این باشه یعنی احتیاط عقلی در ترک احتیاط جمعی احتمالاته اونی که حسن عقلی داره این نیست که انسان جمعی احتمالات انجام بده. عمرش و وقتش و ذهنش بکنه به احتیاط جمعی محتوالات من احتبال بزن پنشترات که اصوره من بشم پونزه داره این حسن شوشن دیگه حسن چیمیشی دیگه انسان دیگه این که میگن در ترک احتیاطه خب مراد آوش دیگه باشه من می کنی معنام بکنم. چون خیلی نسبت نمی کنم بایدن یعنی احتیاط به معنای عقل عملی اونی که حسنه هست. این احتیاط در این هست چه انسان دنبال ادراف جمعی محتملات نباشه زندگیش تلف نکنه برای ادراک احتمالات احتیاط در دردیه پس این میارش خسن عقل عملی است این احتیاط دوم، دو احتیاط سوم، احتیاط به اصل عملی اصل عملی که ما تو اصول می‌گویند. این نه به مناط اول به نظر ما، نه به دوم، دو زاره دو اون فرق نذاشتن. این مناط شی دیگری، این مناتش اجداء نفسه. ابداء نفس از این صورت. این نه احتیاط اول نه دوم. دو و لذا در حقیقت مرجع احتیاط به پیش ما به تنجز محتمله به نظر ما در بیشتر عبارت در باب احتیاط تنجز محتمله و در ما برای تنجیز و احتمال ازن و, و احتمال این خیلی ظرافت داردگاه داره داره وقتی میکنی شدید وقتی میکنی توضیح بودم فقط اشاره ارزو میکنم ببینید ما چون دنبال تنجز هستیم. تنجز دو جوره یک قصر خون افتاد روی این کاسه این تنجز پیدا میکنه یک قصر خون بین این کاسه این کاسه افتاد اینا اینطور میگن برای تنجز اجتناب از این اینا همین کافیه چون نسبتش واحده پس عقل ما یک حکم ایجاد میکنه میگه این تکلیف الان متنجز شد اجتر بانه ها اجتر بانه یعنی چی یعنی هر کدوم از این دو تا اون نجس می‌بینه می‌بینه نه هست این بینش بینش اینه ادعای نفس نفس روش میکنه پس احتیاط عقل نظری یک نکته است احتیاط عقل عملی یک نکته است احتیاط به منات اصل عملی نکته گمیه موحد نیست ابداع صورته یعنی باید ببینه حالا این ابداع صورت از چه راهی میاد؟ در این تصویری که ما کردیم از و حکم میاد. یعنی تا خون رو دید اشتنبعن الخمر آمد. اشتنبعن دم آمد. این میاد ابداعا میگه اینم هست اونم هست. این و اون. ولذا اینجا اون صورت رو میبینه. یعنی اون اشتنبعن نجس هم در این میبینه هم که این میبینه. نه نجس بودن رو. ناظر به احراز واقعی این خلاصه نظر ما راجع به احتیاطی لنگال آرونه که که اوامر زادری و طریقی و فلان من از دا این داریم با کده که جور گرمی پس حقیقت احتیاط و نظام دقت دقیق بکنی به نظر ما مجردی که آیان مثلا میگن در این مسئله ای که از علبا این جور گفته پس احتیاط اینه که رایان را انجام بری این احتیاط احتیاطی به همه اصل اول یه چون معیاره در این احتیاط اصل عملی این است که باید به یک درجه برسه که نفس ادعا بکنه. حالا یکی از فقها گفت گفته اون چه؟ چه داره؟ یعنی باید جوری برسه که ما یک رابطه بین این و اون شاره پیدا بکنه. بین این و شریعت پیدا بکنه. اگر ما دیدیم رابطه بین این حقیقیه همین شرع از پیدا نمیشه نظر شخصی خودشه اونجا از جای هیچ تا تصور نمیشه این خیلی نکته ظریفیه اگه درست بشه اصلا یه تصور نمیشه این نیست میسون دیگه ایجاد باشه چون تو جایی خیلی خلاف بحث کردن حل خیلی از شبهات به این نحوه ولیضا نه فقهای متأخر ما مثل شیخ طوسی شیخ طوسی مطلب رو فهمید حالا یه روایتی ظاهرش استنباب ایشون وجود فهمید من با مثال یا در مسئله روان برای این که وقت خواهد شد من این مثال نظام تکمیل بزنم حسن. این عبارت تو فرسنه از ابداعات این حقیقت تا با سخدیره. که اگر شیخ سوطی مطلبش رو به نحو تلقی از این خصوصا دوران عیبت سغرا و امام معصول ما برای نظر شیخ احترام خالیم اگر در این واضح نبود اقل احتیاط خوبه چون اینجا واقعا صورتی رو ابداع بکنه اما اگر نظر شیخ توسی تلقی نباشه تبنی باشه خوب اشتحال شیخ توسی باشه خب شیخ هم مطبقی خواه مشکل درست نمی کنه کاری درست نمی کنه اگر به نحوه تلقی باشه لاعقل ارزش احتیاط داره اگر ذریع شما نباشه اما اگر به نحوه تبنی باشه این بحث رو از درسته ما به شیخ رسوسی مثلا میگیم این بحث در دنیای اسلام استاد صحابه مطرح شد اون دعوای معروف مثلا اده زیادی از فقای اهل سنت زیاد میگن صحابه هر چی که گفتن خود همی بسنده فیل باشه کنانف علوی اهل رسول الله این به نحره تلقی اهل رسول الله پس ما قبول شد ابو هنیفی میگفت اگر صحابه تعدیلی به کار بردن که به نحو تلقیص قبول داریم اگر تبنی خود صحابت قبول نداریم هم رجال و نحو رجال یکی از اشکالات محبوب هنسداد بردی بردیده این که میگفت هم رجال و نحو رجال میگفت ما صحابه شو فهم اگر تبنی خوب دقت بکنیم اما مثل ما مثل صحاب از اگر تلقیه از رسول الله اونجا ارزش اضافی درست میکنه قبول میشه. رئیس سرماه همون رئیسی مثل داود ابن علی که مثل محسن مکتب ظاهری ها و محسن ابن حضم علم و علمای ظاهر اونا اینجور تفسیح قائلن اگر قول یک صحابه باشه باز نگاه بکنیم از رسول الله یا نه قبول میکنه اگر اما اگر اجماع صحابه بود دیگه اجماع رو قبول داریم این نهج ها خیلی اصرار دارن که اگه میگن که چون دیگه در اون به خطر می‌ونید اگر اجماع صحابه شود تلقیه این مطلب رو در دنیای اخلاق از طرح دوم مطرح شد راجبه صحابه الان هم ما مطرح میکنیم مخصوصاً در زمان ما طرح این مساله از زمان ما و اعطای یک ارزش خاصی به رأی خودما تقریبا از زمان اخباری ها شروع شد از زمان مردم ها مثل شهید اول و سانی شروع شد و اما این که این مسئله یک اصطلاح بره بالاتر تا اگه حدی از زمان اخباری ها مرحوم الله محمد امین استراده در فواز المدنیه میگه اگر قدمای از خامس شیخوین ها فتوا بده این رو ما قبول میکنیم و این که رایی سه بعدها این تعدیر رو به مرموم با عنوان اصول متلقات است اصول متلقات ریشه این بحث که ها میتونم ریشه این بحث در کتاب توائد المدنیه هست که سال 900 خورده خوردهی بوده لاغل چار قرم پنج قرم قبل از مرموم آی در اونجا ایشان مطرح میکنه که اگر فتوایی در بیش قدما آمد چون چرا؟ چون نکته این گرفته که اون فتوای تلقیز نتبنیم ما هم بردیم رو این زوابه جایی که شواهد احراز بکنیم تلقیز برای ازش قانیم جایی که, که شواهد احراز نشه تلقیز تلقیز نه پس نقطه احتیاط و اصل عملی باید یک درجه برسته که به تونه ما ابداع بکنه که این حکمانداره اینکه بمجردی که سه تا پنج شیش تا موضوع مسئله گفته شده به نظرش خوبه داره حتی احتیاظ و به اساساً این درست تلقی این اختیار به مستوای عقل نظری که شما جميع مستقلات رو انجام بدید پس هر کدام یک حساب داره ظاهر یک خللی در بعد کلمات وجود داره اینا رو اگر تجزیه بکنید خیلی توازنشون برقرار میشه و صلی الله علی محمد ده در راه